عادت چهارم به مدت طولانی متعهد شوید. حضور داشتن ضروری است. حضور داشتن مداون و مستمر قدرتمند است. حضور داشتن مداون و مستمر با دیدگاهی مثبت بسیار قدرتمندتر است. اما انجام دادن تمام این کارها به مدت یک هفته فقط انجام دادن آنها به مدت یک هفته است. احتمالا آن دست برنامه های ورزشی کاهش وزن را دی که قول می دهند شما را در 90 روز به فرد بهتری تبدیل کنند. نمیگویم که آن برنامه ها نتیجه بخش نیستند اما مشکلی اساسی دارند. اینکه به شما زمان کافی نمی دهند تا سطح باور جدیدی در خودتان ایجاد کنید که بتوانید بعد از پایان 90 روز نیز به کارتان ادامه دهید. این شیوه یک تبلیغ بازاریابی جذاب نخواهد بود اما یک واقعیت است. شما به یک برنامه 90 روزه نیازی ندارید شما به یک برنامه 250 روزه نیاز دارید که در واقع یک برنامه 365 روزه با 115 روز استراحت است آن هم فقط به منظور در نظر گرفتن خطای انسانی توجه کنید که اگر هر روز ده صفحه از یک کتاب با محتوا و قدرتمند درباره بهبود زندگیتان بخوانید و این کار را به طور مداوم و مستمر به مدت 250 روز انجام دهید 2500 صفحه یا در حدود 10 کتاب خواهد شد. جذب کردن و به کار بستن بینش های موجود در ده کتاب قدرتمند این می‌تواند نسخه بهتری از شما بسازد. و حتی نسخه بسیار بهتر از شما خواهد ساخت اگر سال بعد و نیز سال بعد از آن دوباره این کار را انجام دهید کشاورزان این نکته را می‌دانند که برای برداشت محصول باید یک فصل کامل را منتظر بمانند در جهان پسا صنعتی امروز که بسیاری از کارهای زندگی روزمره فقط با یک کلیک ماوس انجام می‌شود این نکته آسانتر از همیشه به فراموشی سپرده می‌شود اما به این معنی نیست که دیگر درست نیست داشت برداشت. مکس دوم بین داشت و برداشت اغلب نشان دهنده یک دوره زمانی بسیار طولانی است. همانطور که جان لئونارد نوشته است زمان زیادی طول می کشد تا یک دوستی قدیمی به وجود آورید. مالکوم گلادول در کتاب فوقلادهش به نام استثنائی ها مقدار زمان واقعی لازم برای معفقیت های یک شبه ستاره بزرگ در زمینه مختلف از بیتلز تا بیل گیتس را بررسی می کند و چیزی را گزارش می که آن را قانون ده هزار ساعت می‌نامد. کلید دستیابی به موفقیت‌های های العاده در هر زمینه ای تمرین کردن به مدت حدود ده هزار ساعت است. هیچ گونه شوخی در کار نیست. ده هزار ساعت. لدول خودش مثال بسیار خوبی از بکارگیری این شیوه است و کتاب او نه تنها به رتبه اول فهرست پرفروش در این کتاب‌های نیویورک تایمز دست یافت بلکه به مدت 11 هفته متوالی در صدر باقی ماند اگر 8 ساعت در روز چهل ساعت در هفته و 50 هفته در سال را به مدت 5 سال صرف تمرین کردن کنید 10000 ساعت خواهد شد امبر چهار سال را صرف تحصیل در رشته بازاریابی در دانشگاه کرد. اگر زمان سپری شده در کلاس مطالعه کردن و انجام دادن تکالیف را جمع کنید، احتمالاً چیزی در حدود ده هزار ساعت خواهد شد. اما بچه هایی که از هفته چهارم به بعد دیگر در کلاس ها شرکت نکردند چطور؟ نه، وقت زیادی را صرف نکردند. مهم نیست که تلاش می تا چه کاری را انجام دهید؟ شما باید از خودتان بپرسید آیا میخواهم ده هزار ساعت یا حتی مقدار بیشتری از وقتم را صرف آن کار کنم تا به چیزی که می خواهم دست پیدا کنم؟ یا نه. عادت پنجم. پرورش اشتیاقی سوزان تو با ایمان قبلا گفتم که فقط خواستن یک چیز نمیتواند آن را برای شما به ارمغان آورد. این موضوع حقیقت دارد اما به این معنی نیست که اشتیاق عنصری ضروری نیست ما اشتیاق را نیروی قدرتمند میپنداریم، زیرا اغلب آن را بسیار قدرتمند احساس میکنیم. اما واقعیت این است که اشتیاق به تنهایی غالبا یک چیز ضعیف، ناپایدار و بی‌ثبات است شما مشتاق چیزی هستید و سپس آن احساس به سرعت از بین می‌رود مانند یک کودک خردسال مشتاق شیء درخشانی هستیم و سپس به محض اینکه آن را به دست آوردیم، چیز دیگری توجهمان را به خودش جلب می کند و شیء درخشانی که چند لحظه قبل با شوق بسیار به دست آمده بود، اکنون بدون اینکه متوجه باشیم از دستانمان می افتد. گاهی اوقات اشتیاق بسیار عمیق و سوزان می شود و زمانی که این اتفاق رخ می دهد، می تواند برای سالهای متمادی سوزنده باشد. این همان نوع اشتیاقیست است که شما را صبح زود بیدار می کند و تا دیر وقت بیدار نگه میدارد. این همان چیزی است که شما را با انگیزه نگه میدارد تا هنگامی که با سختی مواجه میشوید حرکت روبه جلو را ادامه دهید. چنین اشتیاقی میتواند کوه را جابجا جا کند و مسیر رودخانه ها را تغییر دهد. بیشتر مردم آرزوهای بزرگی دارند اما واقعا در خودشان نمی بینند که به آنها برسند. تعداد اندکی از افراد هستند که نه تنها با تمام وجود می‌خواهند به آرزوهایشان برسند، بلکه به وضوح خودشان را در حال دستیابی به آنها می‌بینند. این کلید مهار کردن قدرت اشتیاق است. اشتیاق مانند یک گله از اسبهای وحشی است که نیاز به یک سوارکار دارند تا آنها را در مسیر درست هدایت کند و آن سوارکار تصور ذهنی شماست. در این کتاب بارها به کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید ناپل اونهیل اشاره کردم. نحوه نگارش این کتاب نیز جالب توجه است. از ناپل اونهیل که روزنامه نگار جوانی بود خواسته شد تا درباره اندرو کارنگی که یکی از موفقترین افراد جهان بود مقالهی بنویسد. در طی مصاحبه که هیل بعدا اعلام کرد نقطه طف زندگیش بود کارنگی فلسفه ساده موفقیتش را برای او بازگو کرد و در ادامه پیشنهاد داد که هیل پروژه را آغاز کند و با 500 نفر از موفقترین زنان و مردان آن زمان مصاحبه کند و اصول و فلسفه هایی را که در بین آنها رایج است به صورت مستنب و مکتوب درآورد. هیل این کار خطیر را پذیرفت و سالهایی را که صرف پیگیری آن پروژه کرد، منجر به نوشتن یکی از کتاب کتابهای تمام دوران شد. از میان بیش از پانصد نفری که هیل با آنها مصاحبه کرده بود، نخستین ویژگی مشترکشان چیزی بود که او آن را اشتیاق ام با ایمان نامید. ناپل اونهیل می نویسد من به قدرت اشتیاق ام با ایمان اعتقاد دارم. زیرا دیدم که افراد را از جایگاههایی پست به قدرت و ثروت رسانده است. من دیدهام که افراد را از مرگ نجات داده است و اشخاصی که بارها و به شیوه های مختلف شکست خوردهاند با کمک این ویژگی به موفقیت رسیدند. اشتیاق سوزان تو با ایمان به این معنی است که مشتاقانه و از سمیم قلب بخواهید به چیزی برسید و بدانید که میرسید، نه اینکه فقط امید یا آرزو داشته باشید، بلکه بدانید به آنچه خواهانش هستید میرسید. به عبارت دیگر باید بین اشتیاق و ایمان شما همخانی و تناسبی وجود داشته باشد اگر شما اشتیاق چیزی را داشته باشید اما واقعا ایمان نداشته باشید که اقداماتتان شما را به آن می رساند، در این صورت خودتان را در مسیر شکست قرار داده اید از طرف دیگر اگر چیزی که آرزویش را دارید آنقدر بزرگ باشد که در آن لحظه بسیار بعید به نظر برسد اما ایمانتان به اقداماتی که برای رسیدن به آن انجام می دهید و متناسب با آن اشتیاق باشد در این صورت شما خودتان را دقیقا در مسیر رسیدن به آن موفقیتی قرار می دهید که هیل درباره آن نوشته است در مسیر سفرتان موانع مختلفی ظاهر می شود شما می توانید بزرگی هر شخص را با اندازه مشکلاتی که او را پایین نگه می دارند تعیین کنید افراد موفق به مشکلات نگاه می کنند و فرصتها را می بینند اشتیاق سوزان چیزی است که به شما انگیزه می دهد تا با مشکلات مقابله کنید اما این اشتیاق سوزان ام با ایمان است که شما را از میان آن موانع عبور می دهد عادت ششم حاضر به پرداختن بها باشید سالها قبل که در زمین گلف با آن روز انزجار مواجه شدم این فکر به ذهنم خطور کرد که اگر برای موفق شدن در زندگی کاری انجام ندهم باقی عمرم را ناموفق و شکست خورده خواهم بود میدانستم که این تصمیم به معنی پرداختن بهای آن نیز هست و هر چیزی که داشتنش ارزشمند است ارزش این را دارد که بهایش را بپردازم وقتی که میگویم حاضر به پرداختن بها باشید، میبینم که برخی از افراد خودشان را عقب میکشند. میدانم به چه چیزی فکر می کنند. آها، میدانستم. حرفهای تکراری. برای موفق شدن باید فداکاری های بزرگ و دردناکی انجام دهم. چه کار کنم؟ تلویزیونم را دور بیاندازم؟ با تمام ها خداحافظی کنم و از همه قضاهای مورد علاقم دست بکشم؟ در واقع اینقدر هم سخت و غم نیست. رویاهای شما ممکن است بزرگ باشند یعنی امیدوارم بسیار بزرگ باشند اما گام هایی که برای رسیدن به آنها برمیدارید همیشه کوچکند. گام های کودکانه که برداشتنشان آسان است به که میپردازید نیز به همین صورت است. شما مجبور نیستید برای رویای یک میلیون دلاریتان یک چک یک میلیون دلاری بکشید. شما می آن را با یک سکه یک سنتی در هر روز بپردازید. اما لازم است بدانید آن سکه یک سنتی چیست و مشتاق به پرداخت آن باشید. رؤیایتان هر چه باشد و هر هدفی که داشته باشید بهایی دارد که باید آن را بپردازید که البته به معنی ترک کردن و کنار گذاشتن است. ممکن است به سادگی این کار باشد که برای سلامتی خودتان خوردن غذاهای چرب را کنار بگذارید یا چیزی به ذرافت ترک این عادت و طرز فکر که همیشه حق با شماست. ممکن است به معنی ترک آن چند دقیقه خواب اضافی هر روز صبحتان باشد تا به جای آن سه چیزی را یادداشت کنید که قدردانشان هستید و چند حرکت درازنشست انجام دهید و به جای سرکشیدن یک نوشیدنی خوشمزه اما مضر حین رفتن به محل کارتان یک صبحانه حسابی برای خودتان درست کنید ممکن است به معنی به تعویق انداختن لذت و خوشنودیتان با عقب انداختن خرید چیزی خاص یا ترک برخی لذت و خوشیها به منظور دستیابی به یک هدف بلند مدت باشد. همانطور که قبلا گفتم من در توانایی‌های ورزشی هرگز بیشتر از متوسط نبودم اما همیشه در تمرینات ورزشی هم جدی بودم. در جوانی عضو یک تیم سافتبال بودم، ما تمرین های طولانی و سختی را انجام میدادیم و بسیار آماده بودیم تا جایی که مدام سفر میکردیم و در دوره های مسابقات ورزشی برنده می شدیم. پنهان نمیکنم که عضویت در آن تیم برایم هیجانانگیز بود تا اینکه به برهی حساس در زندگیم رسیدم، زمانی که در کسب و کارم ضربه بزرگی خوردم و همه چیزم را از دست دادم و به مرحله حساس تصمیم رسیدم. میدانستم که باید کسب و کارم را سر سامان دهم و آن را به مسیر درست برگردانم. زمان آن بود که تکه های زندگیم را بردارم، از نو بچینم و رو به جلو حرکت کنم. میدانستم بدون تغییر دادن چیزی در خودم نمیتوانم این کار را انجام دهم. من بایستی به های آن را میپرداختم. انتخاب سختی بود اما از تیم سافت جدا شدم. دوستانم باور نمی کردند. اما من بایستی زمانی را که صرف سافتبال می در جای دیگری سرمایه گذاری می مجبور نبودم همه زندگیم را تغییر دهم فقط بایستی ده ساعت از هفته را تغییر می دادم می توانستم آن را از زمان مربوط به خانواده یا زمان کاریم قرض بگیرم اما بالاخره بایستی آن را از جای بر می این به آن کار بود به یاد داشته باشید هر بهایی که بپردازید بهای بیشتری برای انجام ندادن آن کار نسبت به انجام دادنش وجود دارد بهای مسامحه و قفلت بسیار بیشتر از بهای نظم و انضباط است در واقع مهم نیست که برای موفقیت چه بهایی می‌پردازید بهای شکست در مقایسه با آن بسیار بیشتر و دردناکتر است ممکن است پنج سال و ده هزار ساعت طول بکشد تا به موفقیت برسید اما بازنده بودن یک عمر طول می کشد. عادت هفتم: صداقت در برتری خفیف را تمرین کنید. همه میدانند که در راهندازی کسب و کارهای جدید احتمال شکست بسیار زیاد است. اصلی ترین دلیلی که مردم معمولاً به آن اشاره می کنند فقدان فقددان سرمایه کافی است. این موضوع درست است و دلیل مهمی محسوب می شود با این حال دلیل دیگری نیز وجود دارد که اغلب نادیده گرفته می شود اما به همان اندازه فقدان سرمایه کافی بزرگ و مهم است عدم صداقت کافی در برتری خفیف تعریف بسیار زیادی برای صداقت وجود دارد درستکاری، راستگویی، تناسب میان گفتار و کردار اما آن جنبه از صداقت که در زمینه برتری خفیف کاربرد بیشتری دارد این است. کارهایی که وقتی هیچکس حواسش به شما نیست انجام می دهید. پایان یک روز سخت و طولانی است و وقت خوابیدن، خسته و کوفته هستید. به سمت تخت خواب می روید. کتابتان آنجا کنار تخت است و به شما چشمک میزند. شما متعهد شده اید که روزانه ده صفحه از یک کتاب خوب را بخوانید اما خسته هستید حتی مطمئن نیستید که بتوانید چشمانتان را باز نگه دارید چه باید کرد به خودتان میگویید اگر فقط همین امشب این ده صفحه را نخوانم اتفاق مهمی نمی افتد حق با شماست این کار باعث تفاوت زیادی نمی شود و همانی که هستید باقی میمانید اما در آن لحظه است که میفهمید واقعا چه کسی هستید در آن لحظه تصمیم گیری است که میفهمید آیا در برتری خفیف صداقت دارید یا نه زمانی که هیچ کس حواسش به شما نیست و متوجه کار شما نخواهد شد زمانی که انتخاب شما بسیار ناچیز، جزئی و بی اهمیت است پیدا کردن سه چیز جدیدی که به خاطرشان قدردان و سپاسگزار هستید پایین گذاشتن قاشق پیش از آنکه کاملا سیر شوید و انجام دادن آن نیم ساعت پیاده روی روزانه حتی وقتی که هوا سرد است هیچ کسی، غیر از خودتان. صداقت در برتری خفیف یکی از بزرگترین رازهای موفقیت در کارآفری است. زمانی که مالک کسب و کار خودتان هستید کسی به شما نمیگوید که به سر کار بیایید یا سرتان فریاد نمیکشد که تماسهای های تلفنی فروش را انجام دهید. کسی نیست که مطمئن شود شما نهایت تلاشتان را می کنید و دفاتر مالیتان به روز هستند. حالا همه اینها به شما بستگی دارد و وظیفه شماست. شما رئیسی ندارید. در واقع جمله آخر کاملا درست نیست. شما یک رئیس دارید اما آن رئیس خودتان هستید. خدمت کردن در مقام رئیس خودتان و انجام دادن این کار با موفقیت و به طور مستمر میزان زیادی صداقت در برتری خفیف میطلبد و بسیاری از مالکان کسب و کارها دقیقا همین صداقت را ندارند. آنها با آزادی حاصل از اینکه رئیس خودشان هستند از خود بیخود میشوند و در حفظ آن نو که برای موفقیت لازم است شکست میخورند بدون داشتن این صداقت در همه کارهای کوچک روزمره یک کسب و کار جدید نمیتواند به مدت طولانی موفق باشد اگر گمان می کنید، از آنجایی که کارافرین و مالک کسب و کار خودتان نیستید این موضوع در باره شما صدق نمی کند، من چیز غیر به شما می گویم. شما کارافرین هستید واقعیت این است که زندگی کردن همان کارآفرین بودن است. مهم نیست که شما یکی از آن دهها هزار کارمند شرکت های قول پیکر باشید یا مالک مغازه بستنی فروشی خودتان یا مادری خانهدار که امور خانه را اداره می کند. شما به تنهایی مسئول راهگشایی همیشگی مسیر زندگیتان هستید. زندگی شما مانند موشک آپلوی است که به سوی مکانهای ناشناخته می رود و هیچ کسی جز خودتان سکاندار آن نیست. شما رمان نویس هستید و داستانی که خلق میکنید داستان زندگی خودتان است. شما فیلم نام نویس، کارگردان و تولید کننده فیلمی حماسی هستید، فیلمی که سالیان سال به طول می انجامد. شما مانند ادیسون مخترع، مانند فریتیوف نانسن کاشف، مانند امرسون فیلسوف، مانند استیو مارتین کمدین، مانند لینکلن سیاستمدار و مانند ویلبرفورس آزادی خواهی صبور هستید. شما همه اینها و حتی بیش از آن هستید فرشی که این داستان را بران نقش می‌زنید از گره‌های کوچکی تشکیل شده است و افراد اندکی متوجه بافتن شما می‌شوند شاید گمان کنید که اغراق می‌کنم به هیچ وجه اینطور نیست شما قادر به انجام دادن کارهای بزرگی هستید من این را می‌دانم چون شایستگی‌های انسان‌ها را دیده‌ام هر موجود زندهی قادر به انجام دادن کارهای بزرگ است خیلیها هرگز نمی توانند کار بزرگی انجام دهند یا آن را تجربه کنند اما همه می توانند. اگر فقط بدانند که این فرایند چگونه است حضور داشتن حضور داشتن مداوم و مستمر حضور داشتن مداوم و مستمر با دیدگاهی مثبت، آماده بودن و متعهد بودن طولانی مدت پرورش اشتیاقی سوزان تو با ایمان حاضر به پرداخت بها بودن و انجام دادن کارهایی که متعهد به انجام آنها شده اید حتی زمانی که هیچ کس حواسش به شما نیست داستانهای شخصی از خوانندگان کتاب خرخ دیاز، نیو برانسویک، ایالت نیوجرسی. از یاز سالگی وارد ورزش بوکس شدم والدینم خیلی جوون بودن از لحاظ مالی سخت در تکاپو بودند پس پول کافی واسه کلاسه تمرین خصوصی نداشتم ولی من اصول برتری خفیف و به کار بردم و تحت هر شرایطی هر روز واسه تمرین میرفتم باشگاه هیچی نمیتونست مانع حضورم تو باشگاه بشه سالهای سال یا تو فینال مسابقا میباختم یا اینکه مدال برونز میگرفتم بیشتر مواقع تو فینال مسابقای کشوری میباختم با این حال حتی وقتی که به دلیل شکست ناراحت و افسرده بودم خیلی سخت به اصول برتری خفیف و مرکب شدن تلاشان باور داشتم. میدونستم که فقط و فقط با سر وقت حاضر شدن به صورت مداوم و داشتن یه دیدگاه مثبت میتونم تو مسابقه برنده بشم. حالا ده سال از اون موقع گذشته و من شاهد ثمره تلاشامم. من این مطلبو دارم در حالی میدنیسم که قهرمان دستهی سباک وزنم. رکرد پونزه مسابقه بدون شکست دارم و من به تازگیم از عنوان قهرمانیم دفاع کردم. حالا که بزرگتر و پخته‌تر شدم به همه فلسفه های برتری خفیف تو سطح عمق‌تر ایمان دارم من یاد گرفتم که چطوری از گذشتم به مسابه ابزاری استفاده کنم تا مسیر آیندم و آسون‌تر طی کنم خیلی قاطع باور دارم که اگه کارهای منظم ساده‌ی و به طور مداوم و مستمر انجام بدم بدون هیچ گونه تلاش و فقط با بهتر کردن مهارتام و ادامه دست و پا زدن تو سطل خامه سرانجام اون خامه میشه کره نکات مهم دو نوع عادت وجود دارد عادتهایی که به نفع شما عمل می کنند و آنهایی که علیه شما عمل می کنند. شما از طریق انتخاب اقدامات روزانه برای تمام عادتهایتان حق انتخاب دارید شیوه از بین بردن یک عادت بد این است که یک عادت خوب را جایگزین آن کنیم هفت عادت قدرتمند و مثبت برتری خفیف عبارتند از یک حضور داشتن گرباقی باشید که از روی سنبول آبی می پرد دو حضور داشتن مداون و مستمر زمانی که دیگران به تدریج محو می شوند به حضورتان ادامه دهید 3. پرورش دیدگاه مثبت همیشه لیوان را لبریز ببینید چهار به مدت طولانی متعهد باشید قانون ده هزار ساعت را به یاد داشته باشید 5. اشتیاقی سوزان توأم با ایمان را در خودتان پرورش دهید فقط امید یا آرزو نداشته باشید باور داشته باشید که به آنها می رسید شش حاضر به پرداختن بها باشید گاهی اوقات مجبورید از تیم صافت جدا شوید هفت صداقت در برتری خفیف را تمرین کنید کارهایی را که متعهد انجام دادنشان شده اید انجام دهید حتی وقتی که هیچ کس حواسش به شما نیست